فیلم ورود آقایان ممنون <تصفيق> نویسنده پیمان قاسم خانی بازیگران رزا عطاران با اون آقایی که با خانم برومند بازی میکردن تو زیزی گلود ویشکا آسایش قانون قانونه مخصوصا این یکی که خیلی قانونه خوبیه و بهاره رهنما <تصفح> خانم داره نگران نباشه کارگردان رامبود جوان موسیقی حیدر ساجدی تهیه کننده علی سرتیپی ولی این که روی دیوار مدرسی دخترانه خود میکنه این من برای شادمانی به دنیا نیامدم آمدم کارهای بزرگ انجام دهم هم زنگ مدرسه میخوره و دخترا از کلاسا بیرون میان همه مانتوهای سرمهی دارن با مغنعه خاکستن بعضی از معلم سوالی میکنن و بعضی به سرعت خداحافظی میکنن و میرن دم در مدرسه پدران و مادران دنبال دختران ناظم مدرسه هم دم در اومده تا نظارت کنه بر رفت آمده دخترا. ماشین مدل بالای از راه میرسه سه تا پسر جوون توی اون نشسته. ماشین ماشینم بازه. جلوی پای دخترها ترمز میکنه. قبل از اینکه اقدامی بکنن، نازم جلو میاد و روی سقف ماشین میکوبه و اونا سریع دور میشه نازم وسط خیابون دست به کمر میسته و از این کار خودش راضیه ولی از اونا عصبانی. توی مدرسه تابلوی ورود آقایان ممنوع دیده میشه و بعضی از دخترها از کنار اون رد میشه دفتر مدرسه در دفتر بسته است. مادر یکی از دخترها اومده و با مدیر سختگیر مدرسه صحبت میکنه. 4 تا از دخترای شیطون و البته درس خون پشت در پارک شده. دختره تو فهمید مادرش. البته اصلا مسئله چیزی وافطاده نیست که من بحثی. خواهش میکنم یه نفرو گزاش کین خانم داروی. شما دخلت نکنید من در مورد مسائل انضباطی مدرسم کوتاه نمیام. یکی دیگه رفته دنبال هوا و هوسش. مقامونو زیر پام بذارم؟ هوا و هوس شیخ خانم عزیز، کرده. از نظر من هیچ فرقی نمی کنه. یکی انتخاب میکنه درس بخونه، پیشرف کنه، بره المپیا به کشورش خدمت کنه، یکم انتخاب میکنه برای شوهره گرامیش قرم سبزی بپزه. ولی یادتون نره خانم دارابی، نفیزی شانس اول قبولی المپیا شانس اول که منم، خایم دارابی بخشیده ولی هیچ جای دین خدا نگفته که درس خوندن و پیشرفت منافاتی داره با شوهر کردن ویلکون خان ول کن من بوشم از این حرفا پاره قانون قانونه مخصوصا این یکی که خیلی قانون خوبیه محسل شوهردار باید بره شبانه خایم دارابی. حالا میشه ببخشینه بله دیگه از قدیم گفتم بخشش از بزرگانه هلیش خان هر دقل وزاری این پانش رو بده یه ذریع چیز هموم زنون است؟ بفرمایید برید کلاس شما هم بفرمایید بیشتر از این وقت منو نگیرید دختر خانم اخراجن و سلام بیا بریم سهر حالا اگه اینام بخوان من دیگه اجازه نمیدم بمونی بیا بریم خیلی پیش سهر گریان و مادرش پشت سرش از دفتر بیرون خانم گیاهی معلم شیمی پشت سرشون اون آبستن بیا فکر که صحابم داره پاره به کمک خانم گیاهی میده دخترها و خانم دارابی دست به سینه ایستاده و فقط نگاه مستخدم در حیاتو باز میکن خانم دارابی با ماشین شاسی بلندش و همراه پریا و خانم آغازی خانم گیاهی رو میبرن بیمارستان ظاهرا دست فرمان خانم خیلی فرم. بیمارستان بهمن چطوری دختان؟ دارم میمیرم آقای دکتارو دو میگه دست خودتو خانم گیاهی با لباس مدرسه روی تخت خوابیده و درد دیده اجابه بریم مایفته میگیم بله نفذ نفذ دم بازدم آه اتاق عمد دم بازدم آه <JO neatly> دستیار دکتر تخت و حرکت میده و خانانوی گیاهی رو میبره بریم نگران به دکتر نگاه بره نه تر های دکتر اصلا بهتون نمیاد که پدر پریاه هاشی اصلا بهتون نمیاد که پدر پریاه هاشی ببا جیموز بیش اگر مجلس جشن و سرورتون تموم شده بفرمایید که معیز ما حاله. به به خانم از عزیزمام که اینجا هستن دارابی مذارمم خانم دارابی معلومه دیگه آقای دکتر با این همه مشغله نباید اما را بیاد بیارن اصلا شک دارم بدونید دخترتون که هست چندامه اختیار دارین خانم پرویه من پیشتاناشگاهیه باورتون میشه من دارم؟ نه. با بابا من میسن بود میاتم آره عزیزم حتما این بدون من دیگه. سمار. خدا. <تصفح> خب بریم دیگه. خاطر بفرمایید به کارتون برسید. ایشالگیر خودتون باشین. حق ازم ما. اصلا نمیفهمم چرا خانم گیهی اومد پیش آدم اصولا پیش دکتر مرد معذبه. مگه ما دکتر زن خوب کم داریم دنگی به پریاجون خیلی تخفیف داده دکتر گرونیه اگه ما زنا به هم اعتماده داشته باشیم از آقایون چه انتظاری دارید <تصفيق> خانم دارویجی اصلا نگران نواشیم مگه میشه نگران نبود بله بله میشه من خودم خواهرم هزار و هفت ماه زاییدم بعد سالم سالم هم بودم بجشون هفت ماه کدومه من این موقع سال دبیر شیمی زن از کجا پیدا کنم نظر نظر در خیابون ماشینی از راه رسیده و میخواد دندقه وارد پارک بشه ماشین خانم داراوی به سرعت از راه میرسه و میتوجه وارد جای پارک میشه خانم محترم داشیم پارک پارک میکردی ما صدوتا واسه من بارم میکنی؟ چیه ضعیف گیر والی؟ فکر کردی حت من زنم میتونی به زور بگی؟ بخشوی بفرم معلومه که میفرمایم می راننده سوار ماشینش میشه خانم دارابی توی کتاب با آقای ابتاج که از مسئولین آموزش و پرورش صحبت میکنه قدر از خانم دارابی نزنید. این یکی هم که پیدا شده در حد اوکازیونه فرست کتابهای اولویتهای استان آمده شد آقای ابتاج حالا هیچ مردی پاشه تو دبیرستان من نزاشت از این بوده هم نخواهد کوشش. اون باز هست مردی که فرستاده بودی، داغ ندادم تو. حالا یک دبیر مرد بکنام استاد دخترای مردم. شما داشت تابش؟ یکی از کتابخوانان بود. شما قیغ است. من حساسیت روی شما رو درک میکنم، ولی در شرایط فعلی کار دیگه از دست بنده بر نمیاد. این آوازیم که معرفی شده از نظر علمی در سطح بسیار بالایی است. از نظر آمدهش مبروش. نه خیر آدمی نه. خیلی ممنون. من تعهد میدم طبق سیاست کاری خودم عمل کنم. هرچی که خودتون میدونید. شما راه تماس منو که دارید. هر لحظه شبانه روز کسی رو پیدا کردید با من تماس بگیرید دادفن کشو. خانم دارابی از کتابخونه بیرون میاد. آقای رضایان مدیر یک مدرسه پسرونه که اون هم کوتاه قده تلفن همراه در دست ایستاده که یک دفعه خانم دارابی رو میبینه و اونو همراهی میکنه. سلام خانم دارابی. حالت چطوره؟ ممنون. خانم دارابی میتونم که الحمدلله بهترم. بلی بهتر از طرف بنده و همکارم تو دبیرستان از دانش آموزان خیلی بهشون تبریک می‌دهم بابت باتе دغلوای نازنینشون. حتما. خانم دارویی یک لیوان. جایگزینش مندم تنگش پیدا نشد گویا. با چندتا دبیر خوب صحبت کردیم. خیلی خوب خانم دارویی که این آخر سالی استن کسی رو پیدا کنیم. چون که بچهاتون آقای بن، اولمپیادم نزدیک. خیالاتون تخت در زایان. رقیبتون بتون بچه های منن اونم بچه های شیمی من امسال علیال بله حتما همینطوره که میفرمایین کنایه میزنی؟ بنده غللب بکنم خام دابی اتخاب شما میفرمای خوبم بندام تایید میکنم ولی نقطه اینجاست که رضایان با حرکت صورت میگه بعد چیز خواهید من برم به کارم برسم با اجازه نخریر نمیگذاریم بفرمایید نقطتون چیه؟ رضایان درجا بر. خانم دارابی عزیز نکته اینجاست که اگر آن خود مرحوم لاوازی هم از قبیرون بیاد و دبیر شیمی دختراتون بشه ها جانم یه کم واقعبین باشید خانم دارابی المپیاد مال پسراست خب تو کارهای علمی مردم موفق تره دارابی قد بلندش رو به خاطر رضایانش پخش که زدن تو سرشون با خاطر اینکه شعراشون تو خوناشون حبسشون کردن یه آقای پیرکویی هم که بزنش داد دیدی که زنه از دست جلو خانم ما با هم بحثی نداری تو المپیاد هم دیگه رو میبینیم امیدوارم <تصفيق> هر چه زوتر یه دبیر خوبشی می پیدا کنیم که تو شرایط مساوی با هم رقابت کنیم. خانم دارابی که در حال رفتن بود از این حرف خونش به جوش اومده به طرف رضایان برمیگرد کیفم باشم در صورتی که کیف روی دوششه و رضایان رضایتمندان لبخند زنگ مدرسه خورد. در ساختمون باز میشه تا بچه ها بیرون کن. همه شادمان بیرون پریو خانم آقاسی بیر ادبیات که چادر سرشه توی دفتر جلوی خانم دارابی که یک شیشه شربت رو میزشه می‌شینه. باجروحی‌هاشون خیلی بده. سرم نشسته خونه سوبت شب داره گریه می‌کنه. خیلی متأثر شدم. واقعا معلومه که نه. خانم آقاسی وا میره. حالا خب گوشاتونو باز کنید که دیگه تکرار نکنم. قانون آموزش رو پرورش میگه حضور زن شوهردار وسط یک سی دختر بچه‌ی مدرسه‌ای ممنوع بدآموزی داره. بدآموزی؟ بله. خان کاد قرمز میره توی مدرسه من فردا معلوم نیست چی آواسه بچهای های مردم تعریف کنه. خانم دو رو بی صح بعد خط به ما نگزود ع کرد حالا چه رسید به چیزی تعریف کنه؟ تعریف میخواد چیکار؟ و می داره نامه های آاشقان پسر رو میره توی مدرسه من. این نام پراکی ها از نظر من مثلاق بارث بداوزیه و از همه بدتر تششه از حال عمومی شما راست میگیید اصلا سحر کار درستی نکرده ولی خب فکر کنید که سحر به جنگ که بره شوهر کنه میتونست با طرف دوستشه این بقیه. علی راست از اولش اینطوری این نبود اصلا تیریپ عشق عاشقی بود داروی سرت کردید عشق کدوم عشق همون عشق دیگه که ببین بچه جون عشق فقط دو جوره عشق مادر به فرزند و عشق بنده به خدا بقیه انواع عشق مجازian که در اثر اختلالات هورمونی به وجود میان این عشق بین زن و مرد که الان صحبتش هست یک مسئله کاملا فیزیولوژیکه که علکی رمانتیکش کردن یعنی چی خانم داراب یعنی پس این همه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین خودت در... جواب خودتو دادی عشق مال قصه هاست در زمین اگه مساله ارزش ادبی اینها نبود محال بود بذارم چنین مزخرفاتی توی مدرسه من درس بدی با خیلی من خیلی ممنون هستم داد نزدن ولی راستش همین در... که... که گفتم یک بار دیگه اسم این دختره رو بشنوم یکی دو نمره از انضباط همتون کم می‌کنم شما رام توبیخ می‌کنم خانم آقا رو میگیره حالا بفرمایید خانم آقا دست پریار رو میگیره و بلند میشن و میرن. خانم دارابی مشکوله نوشنه چیزی زرزم اینم منوان نصیحت بهتون بگم. اگه یه وقت خدای نکرده دچار احساس آشقی شدید هیچ چیزی بهتر از ورزش و دوش آب یخ نیست آب یخ مجزه میکنه بچه ها توی حیات مدرسه والیبال بازی میکنه بعضی دیگه بسکت با بعضی ها بد میتونه پریه ریحانه جینا و محشی توی آزمانشکان نشستن و با هم صحبت میکنن ما به تو مش موافقی من که همچون چیزی گفتم من گفتم عشقای خیابونی بده برو بابا اینقدر با بدمیرزه استله مسخره عشقای خیابونی ازاده. بده بی خیالش دیگه هی برو فرار بیا کمی فاصله میگیره و می‌ریست پس با این حساب سحر ای چی دیگه مریض ناجوره مریضش هم مصریه اگه برگرده هممونم مریض می‌خوای الهی بمیرم چی شده سهر محشید عاشق شده این از نزر دارابی یعنی یعنی کارش تمومه بچه‌ مامان میگه بیان احتساب کنی احتساب؟ آره. احتساب میکنی میگی ما تو امتحان المپیاد شرکت نمیکنیم تا وقتی که سر رو را بدی. آره. اونم قبول کرد. حالا بترسونی بشه جازه. اگه ای که هممون رو اخراج نه بابا مگه کشکه. خیلی دیر شد، بیاین به درسمون برگرد. خب. تو این واکنش دو مول پتاسیم با. چی شد؟ سهر جه پوتوسیوم بود. <تصفيق> خیلی خوب اشکال نداره. من میگم پدر مادرامونو بگیم بیان واسطه شش. حرف اونا رو قبول کنه ها. آره اون که اصلا ما رو آدم حساب نمیکنه. آره. بهش بگن سرحت حتما قبول میشده. بگن شو</thead> اول کلاس بوده. خفش شو. خفش شو. من چمیدین چه؟ سحر بدبخت قربانی نفرت دارابی از مردش اینا فشار این اول فشار ترشیدگی عزیزم. میدونی داستان خانوم دارابی چیه؟ پریا به ها نزدیک میشه. این یه نامزد داشته که خیلی دوستش داشته. ذهنش میره به یه واقع خیالی که خانم دارابی با لباس عروس نشسته پای سفره عقد و یه نفر میاد در گوشش یه چیزی میگه. یافین دارابی عوض میشه. به لرزه میفته و از اون روز دارابی تصمیم میگیره از تمام مردها انتقام بگیره. مگه خبر را زیر همین ساختمون یه سری زیرزمینهی ترسناک هست که دارابی مردا رو میبره اونجا شکنجه میده باز هم خیا. در یک زیرزمین نیمه تاریک از روزنه های اندک نوری به داخل میتان دارابی سه مرد و با زنجیر بسته و با شلاق به جونشون افتاده. سر و صورت مردا خونیه دارابی زغ زده شده و از خنده ریسه رفته مردای کسی مردای قصد دخترها از این تصورات خنده شد باشه اونم شد میسین جدی میگم بیهی کار که این زروش کم شه خدا این بدتر انتقامیه که میتونیم ازش بگیری پریه چه چرت و پرت میگی فکر کن دارابی و عشق فاقا چه فکری کردی؟ دارویی اصلا امکان چرخ یه جیب توی کادر میاد و میسته. دستی قفل فرمون قرمز رو به فرمان میز. قفل میکنه. پاهای مردی با کفش های قهوه ای رو میبینیم که پیاده میشه. در روی هر دو کفشش رو با پشت پاشت تمویز میکنه. بله، مرکی گازهای مرک پیرن رو روی شلوار انداخته و کت بلندی, بلندی هم پوشیده به در مدرسه هر در کنار میش. اگه الکترون دست دادن ترکیب میشن. آره خیلی خوبم ترکیب میشن. آفری بابا دیگه bad ترکیب تایی عنصران تو شرط آزمایشگاهی مناسب وامیدن آره ولی شرایط آزمایشگاهی مناسب از کجا بیاریم؟ خب شاید نشه بعد خودمون به وجود بیاریم دیگه. کوفت. کوفت. مرد توی حیات مدرسه به تابلوی ورود آقایان ممنوع رسیده ایم ایم بزنی. ایم بزنی. یکی از دانش آموزا که اونو دیده جیغ کوتای میزنه و به دو میره طرف ساختمان مدرسه آقای رزایان مدیر, مدیر مردسه دادو همین همینه همی نه اون 15-16 ساند از دارابی کوتاتره یه مرد بلندتر میخوای این آقا فرشاد خوبه؟ سرخیابون بوتیک داره فشنه. مم. نه خیلی ملوسه. یه مرد مرتر میخوای پری یا بابای تو چی؟ فکر کنم داره مامانش. پریو <تصفيق> واقعاً که. ریحانه. رضای شما چند سالشه؟ اوه من سد داداشم با کسی شوخی ندارم. آخه دیگه من فکر که صدای جیغ اونا رو به خودشون میاد. دفتر مدرسه. ناظم مدرسه فرار کرده. خانم آقاسی هم که چادر سرش نیست، پشت میز سنجر ده. دبیر شیمی. دبیر شیمی، بله, بله دبیر شیمی آقای جبلی. مردی با موهای کم‌پشت، با عل موها فرفری و با سر سرجوش طرحی موی فر. ریش پروفسوری داره و عینکش رو با بند به گردنش انداخته. چند تا کتاب دستشه. ببخشیدا. میدونیم ما نه اینکه تو این مدرسه‌مون اصلاً دل‌آلا دبیر مرد نداشتیم، این بود که یه خورده هممون جا خوردیم یعنی اینکه ما عصب از دیدنتون. معذرت اتاق اتاقم بفرمایید خانم دارابی دبیر شیمی جدید سلام علیکه سلام بفرشید نگفته بودین که قرار خیلی مهم نبود نازم میخواد بره اما جبلی سر راه ببخشو خواهش میکنم جبلی تازه متوجه میشه که سر راهی و مم. کنار میره تا خانو نازم بره نازم در رو باز گذاشته و رفت شما از من میترسیم؟ دارابی خیلی خوش به جبلی نگاه می نه من از شما نمیترسم پس اون دارو ببندیم بره دارابی نگاهی به کتابای اون میترسم خب آقای جبلی جبل. مدارکتون بره بخیر. البته این تا دو سال فیشه ها <تصفيق> جبلیت پوشه این رو به دست دارابی میدی که دستشو درست کرد آقای ابتاها چطبا در مورد شرط خواست مدرسه من با هاتون صحبت کردن بره ولی پس باد بدونید اینجا یک مدرسه معمولی نیست بشینید اینجا مدرسه ای که هر سال بالای 95 و پنج درصد آمار قبولی کمکورشه آه چه عالی. چه خوب تقدر پار سال نفر از دخترهای من به مرحله دوم ورودی اولمپیاد رسیدن بیشتر از تمام مدارس دخترانه کشور دو نفر اولمپیادی هم داشتیم که یکیشون میدار نقره مجارستان رو امار لیلی رشیدی آه ولیم نشیرستم بازیگرم هستم خیر شیرا دیگه با پیدرشون بازیم با... توی با اون آقایی که با خانم برومند بازی میکردن تو زیزی گلو با اونا اه... اینو گفتم که خاطرتون باشه کجا آمدید اینجا مدرسهی ای که رهبران و مدیران آینده ای کشور رو پرورش میده شما خندیدید؟ نه ولی به نظر من یه لبخندی زدید؟ نه بابا خدا شراده به جون مادرم نخندیدن ولان... شما با مشارکت زنها در رهبریدید نه چون بعضی مردا اینجوری فکر میکنن اساساً بعضی یا با مشکل دارن آها آه. آه نه نه نه آره دیدم من از این مردا دیدم واقعا اصلا مایه آبروزی خیلی خجالت آورد من که نه من خودم خیلی اطفاق عاشق زنم جدا؟ ب... یعنی منظ... منظورم اینه که بهش زیر پای مادرم هست. این که ربطی به من نداشت؟ نه واقعیتش این که ربط نداشت ولی خب مرحله کشوری المپیاد بخمن برگزار میشه از سر تا سر ایران 20 نفر انتخاب میشن برای مرحله سربون هر کدوم از چهار تا من برن توی این 20 نفر نفر یک میلیون تو من بهتون پاداش میدم یک میلیون؟ و بزای هر کدوم از دخترام که برن توی تیم المپیاد شیمی ایران دو میلیون دیگه پاداش میگیرید خیلی خوبه چهار تا دیگه میشه از... اینو خاطرتون باشه هموقت که پول خوب میدم کار خوب هم میخوام منظم مرتب آن و بدون هاشیه. متوجهید که چی میگم بله بله حتما عطم... متوجهید بله متوجهم جبلی بیچاره دو تا دو تردید میشه یه وارد یه توضیح میدین میخوام سرتون به کار خودتون باشه بیاید درستون رو بدید و تشریف ببرید همین فقط خانم اگه اشکال نداشته باشه من یه روز در هفته اگه بتونین به مرخصی بدین چون مادرم خیلی دارویی که به چیزی شارکرده عصباش شده و با دست به جبلی خدا جبلی فکر میکنه داره بیش میده که پا شد, شد. چی شده؟ به همون دیگه خواستم بگم اگه بشه در هفته یه روز بتونم مادر دارابی در رو باز میکنه که پریا میافه توی آتا جبلی جان پریا میخند میخواد برو و در رو ببنده که دارابی جلوی در بگه دارابی دست بسین و عصبی استاده که پریاد دست به پشت آرون آرون یه پهلو وارده سلام. اتاق میشه بچه های شیمی من جینا پشت سرش ریحانه که چادر سرشه در و در بخش خب خانموی عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امیدوارم که بتونیم در ادامه سال تحصیلی با همدیگه روزای خوبی رو با بتونیم با همدیگه بریم امتحان های رو خیلی خوب بدیم و دیگه تایی تاییش اینی که پرچم ایران رو هر جای دنیا بتونیم برفراشته کنیم و ما آره رو دیگه <تصفيق> البته آقای جبلی موقت اینجا هستن بله ولی البته تا خانم گیاهی برگردن خانم گیاهی که برمیگردن حالا انگار نگهتاریه یک جفت و 7 هفت ماهه کار خیلی مشکلیه فعلا ایشون شش ماه مرخصی گرفت یک نیروی کیفی مملکت باید شیش ماه از کار و کشش و خدمت به مملکتش بیفته و بره کهانه عوض کنه واقعا چه استعدادهایی که تو این به شور به در هدر نمیره خجرت آوره آزمایشگاه چهار تا دختر به ردیف نشستن جبلی جلوی کلاسه و دارابی دست بسینه بغلش ایستاده. آقای جبلی درست شروع کنید که خیلی عقبیم بله خب بعد شما سراغ. سراغت باشه من به خاطر شما چهار نفر قانون مدرسه زیر پا گذاشتم و اجازه دادم یک مرد خالص تو مدرسه بذاره. اگر مشکلی پیش بیاد، حالا هرچی، بلافاصله ایشون رو از مدرسه فورا بیرون می‌کنم. متوجهید که چی میگم؟ داره بهش نگاه میکنه. م? بله. ما. بدید پرید. بله خب همونجور که گفتم بچه خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم ما همون کتابی که خانم گیایی با کار کردن اولمپیادهای شیمی ایران رو با کار میکنیم تا صفحه ی صد مثل که ببخشید آقا بله خانم شاپوری دیگه بله بفرمایید شما زن دارید جبله که کتش رو تا نیمه در آورده بود دوباره میپوشه از این هر جا نه خیلی پریام میخنده و به دوستاش اشاره میکنه که این مورد مناسبی برای اجرای نقشش استرخ. و به اه... نام خدا، بیمه ماشین جبلی روشن نمیشه جبلی ناراحت پیاده میشه، کلاچو از سرش برمی‌داره و موارشو مرتب میکنه ماشین رو هل میده تا روشنش کنه. دخترها از در مدرسه بیرون میشن. و میبینن که جولی به سختی داره جیپشو رو هول می آقا، شما بشین ما هول می نه نه نه ها، نمیشه. نه بابا، بشین بشین. نه بشین جان. نه بخدا این استارتش خرابه. بعد بدم. بریم. یک دو سه. اوه، جولی داره درو باز میکنه و به کمک دفتران ماشینو رو هول می کنه. خواهش می کنم. آ یه مقدار دیگه. یه مقدار جبلین پروالا دند دو هانی باو ماز اون چی چی باو ماز این شوت داره بی داد بزنه سر این پس میفته پریا روی مب نشسته کاشا انداخته روی میز و با پدرش صحبت میکنه بابا این اصلا هیچ جور با مرد کنار نمیاد مشکل بهش کاریش کرد نه بذات بگم اتفاقا اون که اینجوری نشون میدن معمولا خیلی هم اونجوریان این خوبه پدر پریا پیرهن قرمزی پوشیده و جنوی آینه خودشو انداز میکنه یه آبی نفتی داری مم. اون بیشتر به این کته میاد سادهه یا راه راه؟ سادهه این این با این بهتره خبی آقای جوالی شما چه هست از اون مناس. خیلی هم خجالتی و گیجه فکر کن امروز دفتر به جای قنیش گچ ورداش خور. یا انتخاب یک کراوات از بین دو تا یکی راه را یکی ساده. به تو من گره بزنم پیچه به چه میکشه وسط شما با گرگاه ولی سوادش خوبا امروز چند بار اومدیم گیرش به اندازیم نشد پدر کراواتو به پرگاه میده تا گره بزن بگه بمیرم بابا پدر اتکرون بزن از مرگیه مامان اصلا زندگی باریدی یا یه وقتی شد ذر فکر خودت باشی نه پریجون احساس که آفتا جذابیت هم دیگه غروب کرده نکردم؟ نه، نکردم زندگی ادامه داره اینقدر به خوده سخت نگیر من سعی میکنم بیشتر از این که تو زمین ندازم خوبه؟ اوی، خیلی داری تیپ میزنی ها من حسر مامانه جدید ندارم اوی دیوونم تازه بهتر این عکس همسر مرحومش روی میز دست میکشه باز دوباره احساساتی نشون جبلی با جیپش میاد دم مدرسه کلاهش هم سرشه از بین یه عالم کتاب کتابای شیمی رو برمیداره وارد حیات مدرسه میشه که می‌بینه دخترا با راهنمایی نازم خیلی مرتب توی صفای منظم نرمش میکنه از دیدن اونها جا میخوره و میسته محشید یه متوجه جبلی میشه دو دو همه دختر ها در حینی نرمش با دست باز به طرف جبلی میچرکه جبلی ترسیده قصد رفتن داره نازم چپ چپ نگاهش چهار تا دختر جبلی رو نشون میدن و میخند سفحا به هم بیفتیم نازم در جبیت چیزی از دعاوی کم نداری خانوان سوی تخواب حرکت دیگه از دادی حرکت بدی آقای جبالی برگیی برگیی آقا پشت اومدیم آقا فیزیک هم آقا پیرانیزی از کجا خردیم جبالی به تلیون بیتورو مند راه روی من من آقا هستم دبیر دبیره دبیره, دبیره دختره خیفه دارم همتش کرد خیلی علاست خسیم ببخش جبلی درمان بایده به هوای دستروی باز کرده و وسیله میافت ببخشی من جو دفتر دبیره آقا سی آرون به دبیره دیگه میگه آقا جبلی ببخشی اینجا اتاق دبیرانه بله, بله. خوش اومدید ما آقای جبلی خوش آمدین آقای جبلی من یزدانپنا هستم قدیمیترین دبیر اینجا دبیر ریاضی بله خیلی خوشحالم از آسناییت امیدوارم دوران راحت و خوبی رو اینجا بگذارونی مرسی خیلی ممنون خوشحالم در خدمتون هستم خیلی, خیلی بابا دستش خدمت. به خدمتون نرمش تمام شده و دخترها زیر نظر نازم صف به صف به, صف به کلاس ها شونده. خانم دارابی دست به کمر زده و توی راه رو قدم میزه جبینی برای دانشان روزه توضیح دارابی با اصلابانت مورن نگاه میکنه و جلو نمید خب اون یکی منصور چیه؟ صوری باسه خانم چند ترتیز کرده؟ درگست هم پی خانم دارابی سلام علیکه سلام بفرم بایید کنید راه ها که جای سال پرسیدن نیست بفرم بعدا میگم خوب. همه چیز رو به راهه بله بله خیلی بچه های خوبی هستن لازم به تذکر دوباره که نیست مم. چی؟ رو رایت کنید آن بله با بچه ها بله بله. جبلی کمی عقد مید. دو دوتا از دانش آموزها جلوی در کلاس شما دیگه صحبت میره به کوی نامزد یک چیزی هم داره؟ حتما داره هم چی تیکیم اگه رو زمین میمونه تازشم من خودم فکر کنم عاشقش شدم اه زحمت کشدی خان تو همین یک ساعت پیش اقلا ده نفر عاشقش شدم خب باشه ولی من خودم اول همه عاشقش شدم اصرا اه خانده ارادی وقتی یکی کس نمره از از زباط هر داتون کم کردن میفهمید. بخاله یک بار دیگه هم دور بره آقای دویرشیمی ببینیمتون از کل امتحانات اینتر محرومتون میکنم. داخل اونا ترسیدی میرن. لازم با دارا صحبت. سلام خانم دارا من نمیدونم اینا از چی چی خوششون اومده. نه برا رو داره نه قد و قواره. میدرس حسابی هم که رو کلهش نمیجونه. جبلی که گناهی نداره. دخترای این دوره زمونه هارش. دارا پشت در کلاس جبلی میاد. از شیشه بالای در دزدکی داخل رو دید نگاهی به جبلی که پشت به بچه پای تخت سخت مشغول درست دادن میکنه و نگاهی هم به دخترهای المپیادی که مهد به تماشای اونند و اصلا به درس گوش نمیدند راوسی توی دفتره داروین توی کتاب روانشناسی جنس مقابل نوشته که جذابترین مردا برای خانم ها لزوما اونایی نیستن که خیلی خوش تیپ و جنتلمن و اینجوریان بلکه اون مردایی هستن که حس حمایت رو در خانم ها برمیانگیزن حالا اینا کی گفتی یعنی چی یعنی مردایی که مثل پسر بچه میونه یکم خجالتی و حواس پرت و ژولیده پولیده و اینا اینا به زنا که غریزه مادری خیلی برشون مهمه حس حمایت میان و اینجوری میشن جذاب ترین مردای اله این حرفها همش مزخرفه خانه داره بیجوه که من از خودم نمیگم اینا رو شما الان تو هر سایت رواجاناسی مدر میره نوشته این خودم نیست دیگه نصف دخترای مدرسه یه روزا عاشق آقای جبلی شدم بایی چقدر ناز این جبلی من که هیچی نفهمدم شده. هیچی نفهمید. بله خیلی خوشیفه آی آره خیلی چه سوزه این داره هم داره دیدینم چی مر می‌دونش نکنه بچه دقت کن چه ویسیام میده خیلی هم خوش لبازه می‌دونی که این وقت سال 26 ماهه این من کاری به این حرفا ندارم این آقا ناز به مدرسه رو به هم ریخته باید یه فکری به حالش بکنین چرا نایمت؟ رفته دستشویی گفتم بهش بگن زود بیاد اینجا از فردا باید بعد زنگ مدرسه وارد بشه در طول روز هم باید دستشوی؟ کدون دستشوی؟ جبلی با کتاب ها و پوش های زیاد در دست پای آب سرکن میخواد آب بخوره دارابی که دورتر ایستاده این صحنه رو میبینه و با نگاهی عمیق و دقیق جبلی رو بررسی میکنه پریا و محشیدم رد میشه از پیشرفت نقششون راضی چون دارابی داره به جبلی دل بسته میشه جبلی از مدرسه بیرون میاد. درسونیمتون دو تا تو دختر تو یک ماشین مدل بالا باوندلی آره آقا خوشگله حالا کجا می‌خوای جبلی که داره عینکش ها میکنه مونده که چی بگه این نگاه به داره ماشین دارم خودم ما نمیشم نمی‌شم متاسفانه ببخشید دیگه ماشین هست آه، چه حرف شد آخ خوش میشد درسونیمتون ولی خوشباله اگر داره که یه چی معنه هیچ یگاری ممنون که چه دوری؟ حالا اون چهاری. حرکت کن برو برو گم میگم باید به بفرمایید ماشین حرکت میکنه. و جینا برای اونها دستکش آها اینم بخشی از نقشه بود برای علاقمند کردن داروی به جیب و لی. لاستون دردن کند. چرا جوونا جیدان اینجوری صدا؟ شما سنگین‌ت رفتار با... کنید تو خیابون بهتون گیو نمیدن. بله بله. جبلی وسایلشو از روی زاپاس برداشت. چه از دور جبلی رو می‌بینن که توی شیشه ماشین داره به موهاش میرسه و خوشحال دستی به صورت و ریشش میکشه و تقریبا معمول ماشینو هول. از جلوی طریو ژینا ولت میشه. هر بول نبخه رو می زن پریاد دارابی رو میشون می و به شمای جیلا کارش نمونه بله بله دارابی ظاهرن دل بسته شده و خانم نازم هم پشت سرشه و داره نگاش میکنه توی آزمایشگاه دارابی داره جبلی بیرون بکنه چی شده؟ هیچی دیگه بابا با تند رفتیم دارابی اصلا ترسیده از صبح تا حالا داره زنگ میزنه اینور اونور دنبال دابیرش میزه زن. می زن. لیسانس هم راضی شده بابا. خسته نباشید بابا. بابا. من گفتم با دارابی نمیشه. بیا بجن که عاشقش بشه داریم اندازتش بیرونش. بابا این نشونه خوبیه. اه. آه. به خدا راست میگم دارابی ترسیده یعنی قبول کرده که جبری جذاب. این ما داره اومد ترکیب میشه. برو بابا. این عنصر اصلا تو جدول مندلیف نیست. دارابی اون. <تصحیح> <تصحیح> بابا. این این واکنش متان با کلوره اولش متان رو آن که میده تا اینکه کنیم حالا متان ما الکترون از دست داده آماده ترکیبه حالا بچه اتفاقی بیارته که واکنش انجام شه بعد کلور پیوندی شکسته شه درفتی؟ ها آره آف بری خانم آقاسی چادر به سر وارد میشه پنگولا خب میشه لطفا بگید منم بفهمم یعنی اینکه آماده ترکیبه. الان بچه‌ می‌شه که واکنش انجام شد کَلیون فعال بشه. آفرین جبلی. الان جبلی یه نخبه بذار روی بده تمومه. بوم. است که صحبت از عشق‌ها ها نه واکنش شیمی بوم. شیمی همه جا جو جواب میده. دنیا روی همین واکنش های شیمی می‌گرده دیگه. آقاسی می‌شینه و دخترها دورش جمع میشه. خب حالا چه جوری؟ چی چه جوری؟ چه جوری می‌خواید جبلی رو وارد بازی کنین؟ خب خب ما جبلی رو اه... خب ما می‌ریم به پریام چه جوری چبیل وارد بازی کنه؟ به سرعت پای تخته میره و می نونسه. به اون فکر نکرده. ولی تو شیمی جواب میده. آره. خدا شکر واقعا شیمی شما همه چی حل میکنه دیگه. دارابی مثل همیشه دست در پشت وسط راه را مدرسه رژیم. از کنار دوست دو دختر رد بشه. آزما ایشون. جبیل ني شاستو، آهسی مقابلش ایستاده و دخترام ایستادم با اون صحبت بکنه. چه به لیمان دیروز تو دفترشون ایشون بودم راجب شما با من صحبت کردم میگن که شما محلشون نمیذارین میگن که آه ضد زنین ای بابا این حرفا چیه ضد زن چیه به خدا من غلط بکنم من همه شما رو دوستتون دارم گفتن که ایشونو میبینین راتونو کج میکنه یه طرف که میری؟ من بله آقا ما دیدیم میکنید این کارو اصلا میگه شما باش حرف نمیزنین بابا میگه رابطه من با آقای جبل در حد دو کلمه سلام خدافز خدافز سلام خوب ایشون با آدم گیر میدن شما بادم با حق بدین دیگه من وقتی میگنم بهم گیر میدن ایشونو ببینم از دور راه کج میکنم از یه مسیر دیگه میرم بدبختی خب خوب که طبیعی وقتی بی علاقه گی و بی توجهی از شما میبینن اینجوری کنن بعدا خوب این خسلت خانم که نمیدونستی نه. آه اونو که خب دقیقاً میدونم اونجوری انزنه اونو که میدونم ولی خب من میگم ایشون چرا ناراحت شدن از این کارم چون فکر کنم من قصدی به طور مثال داشتم آقای جبلی تکلیف ما رو روشن کنید میخوای تو این مدرسه بمونید یا نه محشید گریه میکنه و میره ریحان ناراحت است چی شد ببینین دیگه بچه بچا بتونه عادت کردن آخه یعنی به خاطر من با. بله دیو فلگ دیدین چی؟ yeah. جبلی پا میشه. نمیدونم من که من خودم اینجا خیلی دوست دارم درس بدم. خب م... <متصفيق> اگه دوست دارید بهش نشون بدید دیگه یک کاری بکنی. بله، پسرش. حالا همینه بعد برم بگم من دوست دارم قراردادمو تمدید کنم. آقا سیوژنا جلوش میشی. نه. اه، ببینید نه این کار نکنید. این خانم داره به این جمله حساسه اینکه من می خوام قراردادام تمدید کنم یعنی اخراج. چرا را یعنی چی؟ شما که خواهم دارابیو که کنیم که ایشون یه اخلاقی خیلی عجیبی داره. این که که از دیا هست. خوب. اونار با کاغذش میخوره. جینا هم مثل جبلی خوب. از این حرف پریا شوخ داره خیلی خیر جبلی میشه. محشید معموم بر میگرده و میشه ریحان میده. سوت رفته خنگ. این نجفی همچون بی خودی زد زیر گلی بعد من حرفمو یادم رفت. که چی بگم. <تصفيق> و بالا یادم اومد. خاله م داره بی دیروز منو خواسن تو دفتر اینشون شو یه گذاشتن جلو من دو ساله بعد دادم به من منم امضا کردم خدا رو شکر بعد حالشون بگین چرا؟ چه خوب چرا؟ هر که بهش توجه می‌کنم بهشون لبخند می‌زنن تبریک می‌گم تسلیت می‌گم بعد یه وقتایی همجوری به مناسبت‌های مختلف برشون اس میفرستم می‌فرستم میرم مثلا سفر کردم شده انقدرهاشون سوغاتی برمیدارم میرم خب این چیزا چی میگم آقا جبلی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بچه ست بار بهتون گفتم لغات سخیف رو وارد زبون دارسی نه کنی آقای جبلی به این چیزه که محبت میگن احترام توجه اصلا این زن به قدری دل سوزه به قدری رحیمه که اصلا باور نمیکنه. یه یشاقی گول که بهش میدید اصلا چشماش پر از عشق میشه اصلا آدم گفت یه دیگه بمیگم قادم دارابی خانم دارابی دیاره جویلی با تعجب گوش میتونم تو رو خدایی کاری کنی اینجا بمونیم شما بهترین معلم شیمی هستین که ما تا حالا داشتیم محشید نیشگون میدونم محشید گریه کنن بیرون میدونم میبینید چقدر به من عادت کردن بله خوب حالا من باید چی کار کنم خونه پریا پریا نشسته و درس میکنه در توی آشپسخونه قضا درس میکنه پریا هریا با ویل کنم اولمپیادو شام چیجی میشه که جویلی به دارابی نخ بده خب بدونه اینکه خودش بدونه داره نخ میده پدر به دیوار تکیه میده و کمی فکر میکنه نخ دادن بنابرای تعریف خودش یه فرایند خداگاهانه است یعنی چی؟ یعنی آدم باید بدونه داره نخ میده که بتونه نخ بده خب بحث که من باید این تو کیس رو هم ببینم تابتونم نظر کارشناس عله بدم دفتر مدرسه و خانم دارابی اردو اردو میخواین چی کار؟ آخره خان داراوی عقبی، البته آقای چهبی سفری خیلی که میکشات حفتی ولی خب دیگه چی کار کنه بیچاره. بله خانم برادرمون همین الوند میگه کتاب شیمیشون کلا تموم شده الان فقط یافت هستن کار میکنن. الوند حسادت دارابی گل کرده. از همین فردا براتون کلاس فوق العاده تا هفته شب. تو اردو نه خیر تو همین مدرسه اردومال که اش و زاره نهمال درس. اخواام ازر زاده نگی تو رو خدا الان بیشتر دبیرستان های المپایی در اردو میذارن. خیلی موثره آدم تو فضای علمی قرار میگیره بعد بردرمون میگفت آقای اقیر هفته پیش دو روز بچه ریاضیشو فرستاده اردو داشته بهش. انقدر جلو دادن این هفتم مثلن که نوبت شیمیاست خوش باالشون حیف. چرا حیف دشته بش مال پسرس. درستشم هم همینه اردو فقط مال پسرس نه دخترا این چه حرفیه میزنی خانم ناظرزاده ببخشید همین حرفا رو میزنید که آقایون مرتب از ما کولی میگیرن قصور از خودمونه اصلا من میخوام بدونم رو چه حسابی محل اردو باید مال پسرها باشه ها چه بدونیم آلا. اینا همش زیر سر اون رضایان کتول است اتفاقا شنبه جلسه کلاس های متمرکز المپیاد داریم تو منطقه این مسئله رو مطرح میکنم و آبروش رو اردو یہ پسرونه خجالت هم نمی کشن حالا اگه من دخترامو بخوام ببرم اردو ی یکی رو بگیرم راستی خانوم اگه بخوای میشین بین باغ ما تو لباسون نه خیلی لازم نکرده داربی بهش بر خوده من خودم یه اردو خوب براتون پیدا میکنم هرجور راحتید اصلا بابا میگفت خان داربی قبول نمیکنه ها هر محشید به هم نگاهی می کرد بابا برای میگفت چی؟ همین جوری دی می بابات بابا چی می گفت؟ خاندواره جایی که ماسم نمیاد، میشه من او نکنه بابات فکر کرده من ازش میترسم. والا چی بگم؟ فکر کنم همین جوری فکر میکنه منطقی سر سبز در لواسون هوا نیمه آبی. ماشین خانم داراوی و پشت سر اون ماشین آقای جبلی وارد ویلای سرسبز و زیبایی میشه. پریا دوان دوان به استقبال اونا پدر پریا هم هست. اون هم به استقبال. ماشین دارابی میسته و جبلی از پشت میکوبه کوبید. ژینا و محشید از ماشین دارابی پیاده میشن و با پریا رلوسی می کُنن. خانم زدم از ماشین پیاده میشه و با پدر پریا سلام علیک می خانم داراوی عصبی پیاده میشه. جبلی دوستی دوستی. من من. میز کنار استخ زیر سایبونی نشسته رو درس میخونه. جبلی برای سرشون دارابی اون طرف استخ نشسته روزنامه نازر زادن کنارشه و چای میخوره. پدر پریا دورتر جوجا آماده میکنه برای کباب. خب اینجا اینجوری قط کنی، گوزینه بله, ب... بله. اومدام خدمت خب اینو سال تادلشو حساب کنیم بشین کدوم گزینه است پنج دقیقه فرصت بری جبلی پیش پدر پریانو دید خسته نباشید جناب وقتا خوبی رو روی رایی محلی باشی درسته در مستلط در نور گوش کن سر نغار بعد باید شیش دون بدرش باشه. باشه باشه باشه باشه وقت من م.. متوجه نشونم دختر در حینی درست خوندن حواسشون به لفتی هست آ خانم دارا بید خب بعد خب باید مثل پروانه درشت بشه داهمش از نگاش باید بفهمی چی میخواد باید توجه تو رو تو تک تک سلولای بدنش احساس کن آه سلولا بعد این ناجور نمیشه احباب اردو جای درس خوندن نیست آره واقعا بچه دوباره مشغول درس خوندن میشه خوب خب ببین دکتر من دقیقا اصلا چیا رو بهش تعرف کنم ببخشید غذا وقتی که هوا بردن یه سیخ میتوید بهش با گوجه سبسی خوردن نوشا رو برش باز میکنی خب بعد از غذا دستردنش سرو میکنی چای براش بری قم دکتر نمیدونه چی بگه یا شیرونی یا خورما هر کی بله شیرونی هر هرچی بعد از ما بله جبلی از پدر پریاف فاصله میگیره و به طرف دختران مره این بار از جلوی دارا به ناظر زده رد میشه وار کعل، وار کعل الله خب بیا اینجا یه بار برای بچه ها حلش پریا از راه دور از پدر میپرسه چه جوریه؟ پدرم با حرکات لب و سر اظهار ناامیدی میکنه و پریو متاسف میشه. پدر سیخای گوجه و جوجه کباب رو زیرو رو میکنه. وای وای. نهار آماده شد. برنج، سالاد و سبزی، جوجه کباب و عدس بود. دکتر، آخر میل کنی؟ خیر. جبلی یه تیکه رونو دستش میگیره و به داربی تعارف میکنه. "آقا سیر شدم آقای جبلی با خواهیم با لغمه شرمه یاس بفرمیم دارابی اصلای پریام ریحانه دکتر چپ چپ به جبلی نگاه میکنه دارابی نمیخوره و جبلی خودش رونو به نیش میکشه پاشین پاشین زود چم کنی یه علم کار داریم دکتر پاشین آی دکتر دسته سون در جینا عجله محشید میکشه که زیاد نخونه بغمه هم خمک میکنه رو؟ خسنم. خسنم. خیلی عالی بود خیلی خوشمده بود دست دردن من که درست نکردم آقای دکتر درست کرده بود خیلی خیلی نبیش بوشه جان شما دوستش نفرم داردی بله خیلی ممنون نفرم میوه همه پا میشن داردی و جبلی همه نشستن دکترم نیاد پهلی اونا با یک رویش دستی میوه میشن بفرمین که یکی از دی من خیلی دوست دارم با دماغ سهوالا نه خیلی ممنون من حوض کردم یه دونه بخورم نازر زده این تعارف کردن دیده. جبلی از دکتر میپرسید چی کار کنه دکترم میگه سبد رو بذار جبلی هم همین کار میکنه. میکن ولی حالا مستحصر خودش یکی بر داره میخواد پوستش رو بکنه اما یاد حرف پریام نفه و با پوست میکنه. دارابی تعجب کرد جبلی با لذت پوست ککی از رو با انگوش وارد دهنش میکنه و کیف میکنه. درست داشت هموند. درست داره شاخ در نیم. پدر پریام تعجب کرده. اما جبلی با لذت به کارش ادامه میده نازرزاده با دلخوری یه سبد میوه میاره و روی میز, میز میزه جبلی سری که اتفاق بنده رو با, با, با دست پوست می کرد نه من دیم شما دور نشستین گفتم کمک کنم به این میگن یک جنتلمن واقعی من که میز غذا پدر مادر هم نمیشنسن مشخص دارابیت فرطوالو با عصبانیت موگید از سر میز بلند میشه و میدید خوشت زن دکتر زیاده روی نکردی؟ من خیلی تعرف میکردم فکر کنم عصبانی شدن ها بیا بیا فکر بد نکنم با فکر بد بکنم اگه بده بگیریش دیگه لازمیست بره و رو درس بگیری تا آخر آن خودو بستی نخوب بده دیگیش یه استرس و حیجان شده شوخی کردم و دارم اصلا محاله آره بابا نه نمیشه که. ایمان میخوای زن استخدامت کنه یا نه؟ آره آره میخو؟ خیلی خوب پس خوب رو جمع کن یاد بی. کنار استاق ناظر زده ایستاده و چشمش از تعجب گرد شده. رو بروش در دهن ایک تاغیه سر سبز دکتر و جملی ایستاده. <تصفيق> ها تو بتاریم واقعا منظور چیز بود نازم زاده که خجالت کشنه از میبونه ها رد میشه از پله ها بالا هیچی مثل جوکت کفتن یخه با دمارو وانه میکنم طرف که به جوکت خلید بدون که دیگه تو مشته تا آخه این جوکتا خیلی هم خوب بود دکتر آلی بود یه چیز رویت میگم آویزه گوشت جوک خوب و بد وجود نداره جو قوی هوت وجود داره واقعا یا یا جو گفتن خیلی دوست دارم دکتر ولی هر موقع شروع می کنم اصلا گند می خراب میشه نمیتونه فکر میکنی نمیشه نه جو گفتن یه اصولی داره می خواد بگیره چرا نه آره یاد بگیر بله آبرانگیج هیچ وقت برای جو گفتن از کسی اجازه ندید نگون چه دینی نه چه اینده به درک اه. الان براش ذهنت تو باشتم جالب تو چشمشون بعد نگاه کنی با لبخند هیچ وقت به جوکی خودت نخند. آه. کسایی که به جوک خودشون بلند می‌خندن اصلا قابل اعتماد نیستن. یک لبخند کوچیک دکتر یه لبخند ملیح می‌زنه اما جبلی حواشش نیست. آقای جبلی. بله. دکتر با انگشت لبخندشون نشون میده و سعی میکنه گوشه لبش رو بالا ببره و مثل دکتر بخنده اما صورتش کلن می‌لرزه. نه، نمی‌خوام. فکر یه لبخندم شده. نه خوب نشه. چلو، نه. حالا با اتحاط به کامل یه جوک تعریف کن حالا همه دور میز نشستن و جبلی جلوشون استده و جوک تعریف میکنه ام خرگوش بوده میره داروخونه میگه که آقای داروخونه هویج دارین ها آقای داروخونه میگه که اینجا داروخونه است هویج نداریم میره خرگوشه میره دوباره فردا باز دوباره میت میره اونجا داروخونه میگه آقای داروخونه هویج داریم باز داروخونه ناراحت میشه میگه نداریم بس سرام ول کن بعد باز دوباره میره باز دوباره فردا میاد دیگه داروخونه ناراحت میشه میگه آب هویج نداریم اون گوش نمیکنه با مش میزنه تو دندنش تمام دندنش خورد میشه داروگون نازر زاده توی دلشون دارن میگن بیمزه دکتر نگاهی به داراوی و بعد به جبلی میکنه آه نه آخرش آه باز فرداش دوباره خرگوشه میره تو همون دارخونه میگه که ببخشید دا آقای دارخونه آب هویج داره این چون من یه هویج که نمیتونست بخوره گفته آب حویش داره, داره دکتر به کمک میاد و میخند دخترها موقعیت رو درب کردن آم میخندن اما داراوی دست به زده ساکت <میقراخوع> <میقراخوع> <میقراخوع> <میقراخوع> بچه ها ساعت دوی وقت هم دارابی ناظرزاده سندگیان را قول میدن بنن میشن و میرن جبلی با ایما اشاره میپرسه خود بود و دکتر با همون ایما اشاره خودشون خودشو نشونده اما جبلی فکر میکنه کارشو درست انجام ده جبلی میره خنده دختران و دکتر محف میشه دکتر چای برای خودش می‌ریزه فکر کنم روی آدم دیگه ای کار کنی آدم دیگه از کجا گیر بیاد رئیس میگه تو خود یه کاری کنی خودت چیکار کردن فایده نداره باتا. مگر ما این که اینکه فکری به ذهنش رسیده اما خودش هم چندشش میشه جبری بله بگی. محشید پیش ناظرزاده نشسته و درس می‌خونه ناظرزاده به بازی والیبال بقیه و داراوی که روزنامه و جلوی صورتش گرفته و میخونه نگاه میکنه. پری پدر یتیم، جبلی و ریحان هم تیم ژینا هم داور. ضربه دکتر جبلی دفاع میکنه ریحانه سا میزنه دکتر دفاع میکنه کنه. پریاه میزنه ناظر زده داره نگاه میکنه که توب میخوره توی روزامه دارابی. روزنامه رو سری جمع آشال عجب ضرد دستی، خانم شما قبلا بازی میکردی؟ باشگاه تهران جواب بتون حاضر افتخار بنین راست شما بازی کنین. نه خیلی ممنون. خانم تو رو خدا بیای. خانم تو رو خدا یه دست. یه رو بعد یه روز بعد به خاطر تو رو خدا. گفتم خیر. شما هم راست ساعت پنج بعد تو کلاس باشین. نمی‌شه تو بشه خانم دارابی؟ هفته بهتون اوانس میدم. ذاتو. مگه متوجه نشدی یا؟ خانم دارابی دسته‌ای که تهران بازی می‌کردن. دست یک چیه بابا جون؟ تیم ملیه زنانم بیاد اینجا به بچه محله ما میبازه بابا مسئله فیزیولوژیکه مردا از زنان قوی ترم بگی جا بلی بای داراوی بهش برخورده روزنامه رو پایین میاره نگاه میکنه یه نفس امیر میکشه آماده مبارزه هست بلند میشه روزنامه رو پرت میکنه روی سندلی اینکش رو در میاره و روی روزنامه میگذن وارد زمین والیبال میشه. کلای پری ها رو از سرش بر میدار و سر خودش میزنه جبلی پیمی دکتر داره فاید. همیتونه نگاش میدار بیا جبلی بیا ریحانه میری بیرون محشید نازعزاده تحجب کرد پری خوشحال به پدرش نگاه سرویس اول با دیمه دکتر اینا بزر. جبلی پین می‌زنه. دکتر پنجه بزنه پری جبلی, جبلی لازم نیست همه رو بزنی بزن یکم پنجه بزن دکت داراوی تکون نخورد <تصفح> جبلی هم. دو هیچ انگار امتیاز خیلی خوشحالشون کرده آقای دکتر آره خداییش خانم داراوی اختصاصی واسه شماست بزن مالو دکتر سرویس دیگه میزنید تلفن دانی داراوی سوار جبلی پنجه میزنه و داراوی تو تکلیجور اینور خیلی خوبه دو یک دو یک داراوی سرویس میزنه دکتر پنجه هریا پاس دکتر آبشار و کنترل جبلی توپ می افته روی و نیز جلوی نازرزاده و محشی ریحانه و وسایل می گلدون و استکان و چیزایی دیگه پریا جلوی چشماشو میگیره. دکتر می گیره. جبلی ناراحت شده و دارابی چپ چپ نگاه شده سرویس دکتر ساعد جبلی آبشار محکم دارابی سرویس دارابی دفاع دکتر پنجه پریه پرش دکتر و امتیاز جبلی میخواست با پا بدیره دکتر سیده ده دفاع دارا پاس جبه آبشار دارابی و تیم دکتر نمیتونه کنترل کنه زاده و دوتا دختر مشتاقانه بلرد میشه بازی ادامه داره آبشار دکتر و دارابی و ساعد میگیره اما دکتر پیش دستی میکنه و امتیاز. دارد. امتیاز برای تیم دکتر خوشحالی دکتر و پریا به شکل تیمای آمریکای جنوبی ادامه بازه دکتر جاخالی میگه تورکی میخوام دکتر با دستای باز دور میزنه امتیاز برای دکتر باز هم پوشحالی عجب دارابی عصبی کلا و از سرش بر میداره و دست به کمر به جوهلی نگاه دفاع دارابی پاس جوهلی و ضربه محکم دارابی که میخوام دارابی سرویس محکم دار. دارابی سرویس محکم دار. میزنه دفاع دریا میخواد رد کنه دارابی آبشار میزنه و امتیاز به نفعه دکتر متقید دستش به طور بازی همچنان ادامه دارد. بازم ضربه از دارابی و توپ میخوابه توی زمین حریف سرویس دارابی دفاع بعد پریا و دکتر به دنبال توپ که امتیاز برای تیم جبلی دارابی و خوشحالی اون خانم پاس. خانم یه دونه من بزنم هوا. روی تور. ضربه دارابی و امتیاز جبلی برای دفاع تلاش می‌کنه. می‌گیره و ضربه دارابی گوشه زمین حریف. خوشحالی جبلی تشویق بقیه. ژینا به نفع تیم دکتر رای میده. سرویس پریا. دفاع جبلی. پنجه دارابی. دکترم با پنجه رد می‌کنه. و دارابی با پنجه بلند توپو توی زمین دکتر اینا میخوابونه خوشحالی دارابی و جبلی با هم جبلی پنجه هاشو آماده میکنه دکتر خودشو آماده میکنه برای سرویس آخر دارابی توپو دست به دست میکنه توپو به هوا میدازه سرویس رو میزنه و پریا که میگه پاس بلند آبشار دکتر دفاع ناقص دارابی توب داره آوت میشه جبلی عقب عقب میره یه شیرجه جبلی عقب عقب میره یه شیرجه جانانه و توب رو با یه دست رد میکنه به خوابش این هم آخرین امتیم از دارابی جبلی خوش بقیه هم سر میز میره دارابی لیوانی آب بریزه آقای جبلی خستا نباشید بابا همه زمت ها رو شما کشیدین منه میدونم خلا نه نبودم خای ما رو دستی کم گرفته. پای نورد انتقا میش کارت قاطعانه میگه و آبو میخوره می دکتر جوابی ندارد نازر زاده در رو باز میکنه و وارد میشه نظر داددی میگه که دستسی خا خوش توم چ کردم و آره دسته در نکنه دوزش رو به خاکمال دیدی تازه گرم نبودم دفعه دیگه من دستتا بهش آاص میدم این آقای دکتری که من دیدم بعید میدونم با این حرفها روش کمشه. حواست به جبلی هست آره این چه مرگشه؟ هیچ چکسی نمیتونی بزنی. چت مریضه. رنگش هم که پریده. پسرهایی داری دور و برت هی بیت سرویس میزبال قضا میکشه جوک میگه چرا؟ میره توی فکر. چت مساده چیزی میخواد. بی جون از من بپرسی پسره چه شش دنبالته. چی گفتی؟ نشیدم. جبلی گلوش پیشه گیر کرده خیلی با بود حالا چه حرفا خاطر من اونم جبلی بیت خانو من ده سال نازم مدرسه هم دختر پلکش میفره میفهم چه کلکی میخواد سغار کنه واسه خودم یه پا روان خب که چی؟ این جبلی امروز یه جوری نگات میکنه از بغلش که رد میشه دست و پاشو گم میکنه ندیدی از حولش چه جوری که یکی ازی رو با اوه. دیدی سلینا هر چجوری بهت میرسی برات پرتقال پوس نگرفت ها گرفت یا نگرفت. چرا خب دیگه بفرم چرا نکوشه هلا حالا وقتی پاپیش گذاشت میگه آفلی شهلا چرا؟ چقدر خیلی غلط میکنه پا بذاره قلم پاشو میشکنم همینم مونده اونم الان که برچان ها دارن اولمپیک اولمپیاک ده اولمپیاد اصلا چطور شروع کرده؟ حالا خلاص لازم میزنه نابخرم دارابی عصبی بیرون میره. جبلی مشغول درس دادن به بچه‌هاست. دارابی عصبی به اونا نزدیک میشه. سری سری میخوام برم بعدی. این تانژانت آ، تانژانت بچه‌ها جای کنید. تانژانت با اونا متعجب شدن. من قرار نبود تا ساعت نه. نه خیر. دست ما امانت هستن. بعدش هم نمیشه که، جای کنید، جای کنید. دارابی میره. بچه ها نمیدونن چی شده. دارابی توی ماشین. نازر جان بغل دستش کنار پای دکتر تول. پای دکتر. خداحافظی. دارابی من منتظرو نبرد انتقامی هستم. بله بله حتما. دارابی خلی. ماشینو میذاره توی دنده و با سگرمه های در هم با بچه ها میره. دکتر پریاد دست تکون دادن. جبلی هم با ماشین کنار اونا ترمز میکنه. چیشون این اینا مشکلات زنانه است. رو اعصابشون تاثیر میذاره. خب ما که مشکلی نداشتیم دکتر. تو که عالی بودی. جبلی ماشینو ماشین خلاص میکنه میزنه بایز. دنده دو تا روشن بشه مثل همیشه حالا دکتر مون رو پردار فکر میکنی مادرتون راحت میشه بلنگ گذشنشون روچه را قلقایی تا بریم چی میشه بلی حراتوشون داشته بالا ماشین دارابی از پیچی توی جاده راحت میشه دارابی سرشو از پنجره بیرون میاد هوای خونک میخوره و نفس قمیق بعد چوبه کلاس ادبیات خانم آقاسی دارابی هم دست بسینه تکی راست هست تو یان گوهره پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بوبد حاصل تسبیح ملک بفرمایید جبلیه برشونه دلم کلاس نیستی اون چهار دختر خوشحال و بقیه کوچتا تچ اگه اشکال نداره ببین چند لحظه می‌خواستم وقتتون رو بگیرم یه ارزی داشتم خدمت بفرمایید یه ارزه خصوصی داشتم قرارم بخبینه حتشی به دیوار اونارو دعوت به آرامش می‌کنه و نمی‌چکه. جبلی وارد کلاس میشه. ما ارز خصوصی با کسی نداری موقع جبلی. اگه مسئله هست همینجا بفرمایید بیشتر از این وقتی که رو نگیرید. بسیار خوب. ببخشید من یه مسئله برام پیش اومده که واقعیتش دیگه نمیتونم مخفیش کنم. خیلی دوستتون دارم. بله. هر کردم دوستتون دارم. عاشقتم. خانم دارابی چی کار کنه چیکار کن. این حرکات چیه آقا جبلی بفرمایید بیرون. اصلا شما اخراجید آقا از ترس میشینه و قش میکنه خدکش دارابی رو میشکنه دارابی ترسیده و چندشش شده از این حرف باشه اخراجم کن با برای این ناگهان داروی پریشون از خواب میپره بله خواب دیده جلوی دهنشون میگه حالش بدشون سری میره و عصبی مسواک میزنه میخواد همه یه دهنش پاک باشه زبونش هم محکم مسواک میکنه با دهانشوی دهنشو میشوره کف دور دهنشو پاک میکنه نگاه امیره به خودش میندازه توی توی آینه دارابی محکم توی راه را قدم برمید داراب داراب. صورتش کمی سرخ شد ریحانه از کلاس بیرون و به دارابی نگاه میکنه سلام سلام سلام ترسیدی؟ بترسم؟ چی باید بترسم؟ بگه چی شده که بترسم؟ تو داری به چی نگاه میکنی؟ هیچی خانم گونه توی زر قرمزه مریضی؟ دکتری؟ دکتر که نیستی؟ منم اصلا مریض نیستم بفرما کلاس؟ چش ولی راست میگن خانم ها صورتون یه مقدار سرخه این بخشی صورتون یه مقدار گناهاتون غیرمزه می کنم از فشار باشه فشار من فقط به خودم مربوط میشه متوجه ایت حالا اگه کاری ندارید من برم به کارم برسم خدافز این بار اینجا میدونم یک دبیر شیمیه زن پیدا نمیشه دارابی عصبیه و قلوب قلوب آب میخوره و توی دفترش با تلفن صحبت میکنه خیلی هم خوب نبود نبود لیسانس قبوله پا من امروز هزار تا کار دارم مجب گیری افتادیما خیلی تودم که به ما نمیرسه بفرمایید جبلیه در نبندید ببخش. در نبندید در باز کنید باز, باز, باز, باز کنید باز در باستر من میخواستم باستر لطفا باستر یه این تهشه خانم بفرمایی دمرتون ببخشید کلیده آزماشکا گوم شده بابت چه هرچی گشتیم کلیده نشد گفتم مثلی اینکه که یه دونه یدکیش تو دفتر هست خدمتون رسیدم اگه بشه لطفانی کلیده کجا آزماشکا آزمایشگاه کجا شیمی شیمی دارابی آرون و با احتیاط. اما پریشون پشت می کلیدی رو از توی کشو در میاره توی دستش میگیره و دستش رو دراز میکنه جبلی میخواد بگیره که یه حب برد میشه توی بغلش جا خورده و البته کمی هم ناراحت خیلیم ببخشت خانون نمیخوام فوضولی کنم ولی صورتتون قرمز قرمزه قرمزه که قرمزه جبلی میره ببخشت آقای جبلی مده. دم در نیست امروز ست سبت بریم منطقه برای جلسه کلاس‌های متمرکز محض برای دبیرستان‌هایی که المپیاد دارند. باشه باشه من در خدمت. بوی ذات. درم ببندید. در محوطه ناحیه رضائیان با سه نفر دیگه ایستادن می‌خندم. بقیه هم در رفتند آمدند. دارابی با پوشه‌ای در دست می‌خواد وارد اتاق جلسات بشه که به اونها نرسن. علیکم سلام. کجا ما این اجره جلسه هنوز شروع نشد. میدونم کار دارم. داره. میخوان داراویراس میگن از المپیاد شیمی این صرف دادین؟ داراوی با غیظ به طرف چهار نفر که کنار هم ایستادن برمیگرده. امثال بچه‌ها بچه بچه‌ها رو له میکنن رضائیان. مثل پارسا پارسال فرق داشت. اول آخر که همشون باید شوهر کنم. المپیاد میخون چیکار. خانمی از آن پناه جبلی و یه معلم دیگه از اتاق بیرون میام. یک ساعتی ده هم دنبال تو میگردم تخدمت آقای رزایان میبینم سلام. سلام. بری آقای دبیر شیمی بله جبلی هستن. آقا از آشنایتون خیلی مشروفم نه. آقا ما خیلی از شما تعریف شنده قربون شما اولین دبیر مردی که پاش به دبیرستان گلستان رسیده آقا شما با یه جوری در حد اولین انسانی هستین که پاش به کره ما جبلی رسیده. دست می بزید یه رو گربانه به دارابی عصبی به جبلی میگاه میکنه جبلی متوجه میشه و میره پیش داره. اولی به آخری البته. چون دیگه بعد از اون هیچکس پاشو تو ماه نذاشت. امیدوارم تو المپیاد موفق باشی. هرچند بعید میدونم. همونطور که تو کنکور خدمتتون رسیدیم، اینجا هم پوزتون رو خواهیم زد. خیلی ببخشیدا. وقتی پای حفظیات وسط باشه، ما مخلص شما هستیم. ولی وقتی پای هوش، پای تحلیل و استدلال میاد وسط، دخترا با پسرا قابل مقایسه نیستن. دقیقا. ببخشید، اینو کی گفته؟ آقای جبلی عزیز شما بفرمایید، شما که هم تو مدرسه پسرها درستدین هم دخترها انصافا پسرها باوش یا دخترها خب به نظر من فرق نمیکنه، مثل همه نتش جبلی راستشو بگو میخوام بدونم خب من در واقع فکر میکنم که دخترها شمیر که شگرده منن ذرا ترین و باهوش ترین شاگردای که تابحال داشتم و فکر کنم در واقع امسال پسرای شما سوس کردن. من رو نیافتن و میگن. خارین گناه. نوکر زن ای آفرین، خوب رو دروردیم. گفت پسرش سوزگند. جای چیز بهتره دیگه به زنم نرسید ببخشت. دارابی نگاه ملایمی به جبلی می جبلی سرشو رو پای می نذاره خزی. دارابی ناگهان به خودش میاد و میره و دو زنه دیگه هم پشت سرش. جبلی از طرف دیگه میره که یهو متوجه میشه که باید پشت سر اونها بره. حواسش چه دیگه است؟ جبلی توی ماشین دارا بیه چند ماه این بروردن این بروردن واسه میجام این مشکلی بده ببین دیگه هر کو کردم روشن نشه ببخشید دیگه ما زحمت شما شدید هه چه موضوعی است می‌خواستم بهتون در مورد بزنم دارا بی صدای آهنگ زیاد ببخشید خانم دینو اچون بتا دیگه یه عرضی داشتم خدمت چی؟ یه عرض داشتم خدمتتون عرض و گلتون آقای جبلی موزیک گوش بده بخ بخ خانم میخواستم یه موضوعی خدمتتون بگر چی؟ میخواستم ببخشت جبلی صدار کم خانم دارا بید میخواستم یه چند وقت بود یه موضوعی رو خدمتون مطرق کنم پرست پیش نمیم تو می کنم الان که تنها این بعد نباشه بگم البته فکر کنم خودتون بدونید راجع به چیه بله و جوابتون منفیه و زیاد جبلی صدار کم ببخشید میتونم بپرسم چرا نه خیلی ترجیم میدم راجع به این موضوع صحبتی نکنم خب اتمند خرب بدی کردم که ناراضی هستین از ازم. آره کار خطی کردم. ببینید آقای جبلی. نه اینکه با شخص شما مشکلی داشته باشم، ولی من خودم در وضعیت فعلی راحت ترم منظورتون از وضعیت قبلیه دیگه. نه خیر ارث کردم وضعیت فعلی. حالا مهم نیست، بهتره که کلاً این موضوع رو فراموش کنیم. آره اینجوری بهتره. من اصلا اشتباه کردم، مطرح کردم. ببخشید. چای میکنم بازم صدا رو زیاد می‌کنه. جبلی ناراحت روش برخورد. چیزی نه. دارابی زیرچشمی نگاش میکنم راستش رو به خاطر پول جلا اومدی؟ خب واقعیتش یه به خاطر پول بود ولی همش نه شیزه دیگم هست خیلی پروی آقای جبلی ولی حداقلش درقلش آدم صادقی هستی خب به خاطر اینجا از از دربدری خسته شدم خانم از قراردادی بودم خسته شدم میخوام رسمی بشم که اینطور پس میخوایی رسمی باشی بله منظورتو فهمیدم یه کم آوردم میدونی چهل سالمونه دیگه چهل سال رد کردیم طبیعیه. ولی اگه واقعا میگم قسمت بشه در خدمت شما باشم از جون و دل مایه میزن از سنو و دل میگم ببین آقای جبری من که چی باعث شده به خودت اجازه چنین جسارتی رو بدی تقصیر منه که گور اون ظاهر مظلومتو خودم ساکت باش. شومان که به کوهبین نگاه میکنه و داروزه محکم میکنه پشت یه ماشین. راننده ناراحت از ماشین پیاده میشه و به طرف ماشین داراوی می کردی. همینجوری زحتی میزنی رو ترمز چی؟ خانم، گوش بدی کلم کارم هستی؟ بله. حالا ببینم ماشین من میزنی؟ دوروبی که عصبی بوده عصبی‌تر هم میشه. قفل فرمونو از زیر پای جبلی بر میداره و از ماشین پیاده میشه و به دنبال مرد میره. مرد فرار میکنه. دوری میزنه و از اون طرف ماشین پیش جبلی میره که پاشو از شیشه ماشین بیرون گذاشته. چی داری؟ چی؟ باید؟ چی میگی؟ گفتم که چی میکشی از دست خانومتون؟ چی میکشی از دست من؟ باشت همینا. کنی گذاشت همان. نگا من چمه؟ منو ناراحت نکنین تو چرا لان من میخواستم یه چیزی بفرونم ولی زمان نه دادن. در رفتن نشد مخواستم به چه اجازه اینجوری را تو با آدم ها میکنید ها؟ چی میگه دست من؟ تو چه میدونی که چی میگه دست من؟ همه مردم شاکی از راه بندون به وجود اومده فریاد میکنن آقایون همه صداشونو ببارن شاید من تو زندگی ماشتره خریزنه خوبی باشم به جبلی نگاه میکن من به جون و مادرم دارم أش ما تعریف میکنم با با من... دارابی عصبی میره پشت فرمو و جبلی میکوبه توی سر خودش خونه ی دارابی رفت دوش بگیره مبلمانی ساده با میزی ساده دو تا کتابخون هم اونجا هست حالا دارابی با چای میاد و میشنه روی کاناپه روبروی تلویزیون پتوی نازکی روی پاش میندازه کنترل تلویزیون برمی‌داره و کانال‌ها عوض میکنه. یه عروسی بختیاری رو نشون میده. عروس روی اسب رو, رو کنار میزنه. ایده دورش دایره میزنه. عروس کف دستش رو جلو میاره تا حنا کف اون بذاره. دارابی با دقت و حسرت نگاه میکنه. ناراحت شده و کانال رو دوباره عوض میکنه. فیلم تایتانیک. نه نه, نه. اینا مناسب احوالش نیست. شبکه دیگه. یه مجری اخبار میده. دارابی یهو ها موجود رو توی لباس عروس میبینه که خودش هم تعجب میکنه مردی با کت و شلوار دامادی و گلی توی جیب باید با طرف بزنم نه نه روز این انفجار که بزرگترین عملیات انتحاری از ماه می در پایتخت افغانستان بود دوازده غیر نظامی افغانی کشته و چلا هفت نفر نیز مجروف شدن همکنون همکارم اخبار ورزشی را به اطلاع با تشکر از همسر مهربانم. دارابی حسابی عصبی شده تلویزیون به شده مسا... بلند میشه جلوی آینه میره عینکشو رو بر میداره و نگاهی امین متفکر به خودش میکنه روز بعد دارابی با و شلوار جدید کیف جدید و طرز راه رفتن جدید توی راهرو رو راه میره و دیگه رژه نمیره یکی از معلم با دانش آموزی داره صحبت می‌کنه. دختر از دیدن خانم دارابی خیلی تعجب کرد دارابی از کنار اون رد میشه و متحجب نگاشه خانم دارابی خانم دارابی کومون تو رو میشه. تخت تخت شاید خواهرش باشه. من میگم خودش بود. بعدش منم خواهر پولت که کلاس اومده سه. خب اصلا خوهرم نداره. من تا جایی که میگم حتی وقتی خواهر میاد دارین ایراد میکنی. راست که بابا خانم داره می خوشگل سر. آخه حرف شده؟ اینجا چه خبره؟ هیچی خانم بایی داشتیم درس میخوندیم اینجا که جایی درس خوندن نیست بفرمایی سر کلاساتور بفرمایی مؤلم و نازرزاده از دفتر دبیران بیرون میاد و به طرف دفتر مدیر بیتا صبح خیر خامن نازرزاده صبح خیر خانم دارابی خان سلام خانو دارابی سلام چرا اینجا هم شدید بچه ها؟ ام ام ما... چی... دچ... ما اومده... ما چیز... بای خواهیم دارم این چقدر عوض شدیم خوش, خوش, خوش ماده شده ماده دارم, آه آه شده آه دارم. خیلی ممنونم بچه ها حالا بفرمایید خواهیم نازرزاد زنگ بزشته ها؟ آه... آه الو زنگو میزنم <تصح Titan> خانم دارابی چی شده یه انقلاب کردی نکنه خبر مبریه بفرمایی بفرمایی زنگ بست بفرمایی خبری نه هیچ خبری نیست بفرمایی میگرم بوی عطرت را خیلی خوانم گیجی. خیلی ممنونم فقط این که وقتی آقای جبلی آمدن بفرستی نشتفتر بگی من باش کار باشه بله بفرمایید بچه بفرمایید باشه باش خوش خوشحالی نه عزیزم عوض شده آره منی نخشکی خیلی خوشحالی بی همو بنکنم بعضی از خنومای اینجوریان من میدونم دیگه خوش آرایشن دختر حال من یه دست که صورتشون براستم کلی عوض خوش یا زنجیری شو که تیراتو چه ماشو شده بودیم دیروز این ریخته بود آه. من نکن عمل, کرد. عمل کرده نمیشد اون ریختی و این ریختی بشه پس چی عمل کرده خنگ خود ولش کن دیده به خودش امیدوار شد سخر داره اگه الله هم درو بی عاشق جولی بشه بعدش چی میشه چی میشه پریو خانم آقاسی انگار خیلی خوشحال نیست اما تا دختن نقششون گرفته و خیلی خوش کنم و برای و پایین میپره بفرماییت اه... ببخشت خانم خانم دربی نیستم تو قیجه بلی ای اه... ای با چقدر عوض شدیم بابا اصلا نشناختم به خدا خیلی عوض شدیم اه... اینکتون رو عوض کردین آره؟ بله آره اون در رو ببندید ببندید چی؟ آها خیلی ولی خیلی جالبه خیلی عوض شده خیلی بهتون نیا تو خوشنگه مچکرم بفرمید جبلی روی مبل تکی میشینه و داروی کنارش روی مبل دو راستش زیادی هم دارم میگم ولی اصلا من خیلی عجیبه. یه فرمه ای اینقدر میتونه تو زیبایی تاثیر داشته باشه. اصلا خیلی دارابی عینکش رو برمی که جبلی صورتش رو یکجا میشه من جلزه ببینمش. عینکو از دارابی میگیره. نه چیزی هم که یه عینک ساده است دیگه اره؟ بله، عینک ساده است. ولی همین عینک ساده الان شما بزنین به چشاتون خیلی تاثیر داره. دارابی, دارابی میگه بله. دوست ندارم که این مسئله حل نشده باقی بمونه. هر چی باشه چشمون تو چشای همه دیگه. درسته درسته. خوب. شما هم دبیر بسیار خوبی هستید و این مدتی هم که اینجا بودید مشخص آدم درستی هستید. خوبه شما. ولی زمنه احترامی که برای شما قائلم جواب منفیه های به هم ریختین مارا جبلی چشمای خیصشو پاک میکنه و بلند یه مقدار بیشترش فکر کنین. لطفا من فکرامو کردم آقای جبلی این حرف آخرمه آفشه دیگه موزم تو نمیشه. من نمیخواد که شما از دست من ناراحت باشین. نه بخدا با اینا ناراحت باشم. وقتی من نمیخاین نمیخاین دیگه زوور کنیسا. نه اینکه شما مشکلی داشته باشی اصلا ولی خب من دلایل خودمو دارم. بله بله حتما. شما هم جوونید و حتماً کیسی بهتری براتون پیدا میشه. بله بله کیسی که واقعا فراون ریخته. ولی خب واقعا اینو خانم عثیم قبل میگم من هر جا برم واسه دلم با شماستم. دروبی تحت تاثیرم. من خیلی متاسفم ولی آقای جبلی من بهتون پیشنهاد میدم که این موضوع رو کاملا از سرتون بیرون کنید یعنی اگه میخواید سال دیگه اینجا درس بدید بهتره که هر دومون این فکر رو کاملا از سرمون بیرون کنیم <تصفيق> عجب بابا سر کار گذاشتین و اول اینجوری بردین برنقل. سر کار گذاشتم اول میگفتیم نه بعد آره سر کار رو زشین دیگه نه اون نه اون مال چیز دیگه بود این بله مال چیز دیگه خب آقا من واز دوباره گیت شدم اون نه پس برای چی بود مال پیشنات استواجتون دیگه بدبخشون تو از من خواستگاری نکردی؟ من غلط بکنم، همچین چیز سارحتی بکنم. تو چشم نگاه کن به من بگو از من خواسته نکردی؟ نه، خدا شاهد نکردم. چرا الکی بگم؟ اون روز تو ماشین که از منطقه برمیگشتیم؟ خب خب. تو بر نگشتی بگی که حالا ن نبر بر نگشتی بگی که رسمی موقت از این جور چیزها چی؟ پس منظورت از اون حرکات چی بود؟ خود اون حرکات، بابا هر چی اینا میام. همون حرکات دیگه. چیکار کردن؟ خودتو لس میکردی برای من قضا میکشیدی جوچ میگفتی پرتغال پوست میکندی ها برای من پرتغال پوست نکندی آدم که علاقی برای کسی پرتغال پوست نمیکنه میکنه بابا من چیه میدونم به شما بر میخوره آخه این کارا ببینیم خانم من واقعیتش چجوری بگم من هنن که دوستاشم قرار دادم تمدید بشه میخواستم توی مدرسه بونم بچه ها گفتند یه مقدار با خانمون آره دیگه بچا چا چی گفتم چون به من عادت کردن من نمیدونستم شما اونا رو میشین خب واقعا اگه نه این رو نمی‌کردم لازم نکده ددید برای من بسوزه کی گفته من دلم برای شما میسوزه من خانم اتفاقا اگه بخوام یه روزی ازدواج میکنم واقعا حتما میام سراغ شما اولین کسی که انتخاب بکنم شما این چون شما سواد دارین اخلاقتون هم که خوبه امروزی امروزین نکم که زدید اصلا خیلی خوشتیپ شدیین نکش کارو میکنین خانم منم اصلا ازدواج ندارم چیکار کنم ببینم آقای جبرلی پس شما یه قصد ازدواج داشتین میامدی سراغ منها ها حتما. تو فکر کردی من اینقدر آویزون موندم که بیایی خواستگاری من ها؟ منظورم این نمید. لابد فکر کردی که اگه میامدی خواستگاری من منم میگفتم بله حالا دیگه من بذار روشنت کنم آقا پسر من اگر روزی خدای نکرده قصد ازدواج داشتم سات سال زن آدمی شکل تو نمی شدم فهمیدی؟ ببخشید ما من چمه؟ چته؟ بله. کلان یک وجب قدرته شما باید بری خواستگاری زنی که ده ساند ازت کوتاهتره، نه زنی که بیس ساند ازت بلندتره فهمیدی؟ یه لحظه یه لحظه ببین خانم اولا من خواستگاری شما نایمدم دو من کی گفته قدرت شما بلندترم منه؟ مشخصه بب... که بلندتره نیست. میگی نه بیا ببین بیا ب بله. بفرما قد برندی رفت کنی قد برندی شما آره, آره. <سطاق> پاشنتون برنده کفشتون در دربی. بیاری شما کفشتون در بیاری با شرایلتون مستان خیلی نزف. ببخشید خانم شما قدتون بلند هست توی خانم‌ها ولی فکر نمیکنه یه مرد بلندتر باشه فکر میکنید آقای جبلی این بوده خب معلومه کفش پاشن پاشنه بلند پوشینم 20 سانتی پاشنه یه بی پاشنه من قد من شما بلندتره ببینید بفرمو بفرمو همچی میگه بفرمو اینا 190 سانتی قدشه آدم 160 سانتی بعد به اندازه 150 سانتی رو بگیرو نمیری ای بابا چرا تا نمیکشه من فکر کنم خانم ما اشتباه می که داریم سر این مسائل با هم دیگه بحث می کنیم. خود عوض نکن. خیلی مهم نیست. خیلی هم مهمه. چرا؟ شما قدرت کوتاه. با با. اصلا اگه به معلومه که به قدری من میگم به خانم من توی مردای ایرانی قدام متوسطه <تصفح> <تصفح> کوتاه نیست. می‌فهمید؟ <هم> <تصفح> خیلی هم کوتاه نه خیلی کوتاه به نظر نزر من نظر شما خب نظر من بعد من اگه بخوام ذهن بگیرم خانم من باید به خاطر چیزای خوب دیگه من مثلا خیلی مثلا چی اسم بهت خیلی چیز نمیخوام. خب معلومه نداری که مثلا اخلاقم بله مثلا خیلی خیلی دارم میدونی این حرفو همش حرفه آقای محترم شما نخوای که نخوای قدت کوتاست کوتوله ای خب کوتولم که کوتولم معلومه که کوتوله‌ای اصلا مرجی هست کوتولاش چی باشه ها من, من, مسترم. مسترم. من مسترم. از زمانا با من بحث کردم من اصلا منم گفتم من اگه قرار باشه ازدواج کنم هیچ دست سراغ شما نمیوم شما فقط مسئله چنار قصه تونو ولر کردین و از قدیم خانم گفتن که ادم قد بلند خون به مرزش نمیریسه حالا من دیگه یقین کردم شما اخراجی جبلی ناراحت سر به زیر انداخته و به طرف در مدرسه راه میره ریحانه، پریاج، جینا و محشید ناراحت از پنجره به حیات نگاه میکنه و چهار دختر المپیادی ناامید رفتن اون رو نظاره کرد خانم دارابی در آزمشگاه رو باز کرده و دخترها رو در اون احوان دیده دخترها به می میستن و دارابی با نگاه نافذش به تک تک نگاه میکنه سکوت عجیب روک که یه ها محشید خانیم درابی ببردید به خودم آمنزر بدی نداشتی ما هم می‌خواستیم یکار بکنیم شما سر رو ببخشید برگرده <تصفيق> اینطور پس برای من نقشه میکشین گفتیم ای آقای <تصفيق> جبلی بخاطر بمونه بس، باید همتون رو اخراج کنم ولی حیف که پای اولمپیاد وسطه محشید سه تا دختر دیگه چپ چپ به محشید نگاه می کنید تا جامعه تو کلاسا می گردونیم درسارو کامل دوره کنید بعد از امتان تکلیف همتون رو مشخص شخص می کنه دارابی میچرخه چرخه و از آزمایشگاه خارج میشه. پریار روی دسته سندلی میشینه. محشید میره پای تخته جینا آسینشو بالا می زنه شو. دیگه حرف نباشه خیلی عقدی کتابات نگاه کنید صفیه چلو پنج من اینو میکشم هر دو به طرف محشید حمله می کنم فقط نگاه میکنه. مینیبوس بچه ها برای رفتن به اولمپیاد آماده است جلوی مینیبوس روی کارچه زردی نوشه گروه اولمپیاد شیمی گلستان علم و دخترانه پدر جینا داره با خانم دارابی صحبت میکنه. مادرش هم هست در کنار خود جینا این واقعیه که بارها و بارها اتفاق افتاده بیجن جا بریم دیگه مزمه خواهیم درابی نشیم من احساس میکنم از این به بعد خوبه که ما والدین تعامل بیشتری با مدرسه داشته باشیم من به سهم خودم هر که دستور بفرمایید. بفرمایی شما. هستم. دیر شد با اجازتون خدا حافظ خدا حافظ. به در و سهر از دفتر بود. خانم آواسی به همراه چهار تا دختر المپیادی وارد دفتر بشه. خانم دربی خان دربی بچه‌ها باهاتون خواهر بسند. در مورد آقای جبل در موردشون ایشون هیچ صحبتی باقی نموده. حالا برید سوار مینی بوس بشید. می‌خواستید این خانم نفیسی برگرده که برگشت. خیلی ممنونم دارابین. خواهش می‌کنم. اون آقا هم دیگه جای تو این مدرسه نداره. خان داره اون بیچاره که تقصیر نداره همش تقصیر ما بود ما نباید یه کاری می‌کردیم. داراوی با قیظ جلو میاد و به پریان نگاه میکنه حالا برای شما هم دارم. همین که به والدینتون نگفتم برین خدا رو شکر کنید. می‌گم که خان داره به جن حالاتی که هیچ نمونده نه تنها راهی نمونده بلکه از این لحظه یک باره دیگه اسم این آقا رو بشنوام ده فریدونم را از انضباط شما کم می‌کنم. شمارم رو هم بله بچه بریم بعد از زیر قرآن هم رچیم بریم دیگه دخترها با خانم آقاسی آقا خانم دکتر پدر پریا توی دفتر خانم دارا بیه در کنار کتاب خونه کتابی که دستش رو سر جاش میذاره ما <تصفيق> دیگه داریم میریم شما تشریف داریم راستش من همیشه دوست داشتم مریضه دخترامو ببینم. گفتم حالا که ورود آقای نازاد شده از فرصت استفاده کنم. همچینم آزاد آزاد نشود آقای دکتر. یه امروزه. دنیا درو زخانم دارابی. یه روزشم خدمت شما. راستش من هنوز منتظر اون نبرد انتقامی هستم. دارابی دست به سینه و با لبخند به دکتر نگاه میکنه. محشید میدوئه و سوار مینی میشه. اون آخرین نفر بوده. مینی راه میفته. چو گذاشتم اشکری نداره شما با من بیاید من میرسم اونسونخانم خیلی ممنون آقای دکتر ما بندازه کافی به شما زحمت دادیم چه سپاسگزاری کنیم امروز روز امتحانات المپیک دخترمه چه چیزی مهم‌تر از این بله ما خانم مدیر ما در خدمتیم بفرمایید اه شما که امروز اینجایی بفرمایید صاحب رونندگی مینی بوس از در مدرسه بیرون خانم مینی بوسه هم سفید بله بله رفتم پریا پشت رول نشسته و مینیبوس رو هدایت میکنه سه تا دختر دیگه هم توی مینیبوس هستن سهر هم با اونهاست از بین ماشین رد میشه لای میکشه پریا خودش هم ترسه ماشین دکتر آقاسی و راننده هم پشت نشاستم. آقا دکتر من دارم تنگ می‌زنم که این شماره رو بگیرم. هی نمی‌شه. من نمی‌دونچه‌ای نذیشم راه‌ندگی بکنم. این تزه توکل که نمی‌کنین زن من کی همش می‌ازم خوره. من هم که نذیشم کنم. چرا نذیشم راه‌ندگی کنم؟ من خودم اداره من چینی آغاز از دادن می‌بارم. من چیکار کنم که چی چیه؟ میگم که خاموشه. خونهشو خونه‌شو بگیریم. خونه‌شو نداره. خب شاید بیچاره تلفن ندشت بده. تو تازه براقیده تو خونه. اینو نمی‌شه 200 تا. یه حالت سر تو برای دادن خاطر. بکور جلوی ماشین، میپیچه و مسیرشو عوض می‌کنه. آره مادر چای حاضر، ولی اینقدر چرا عصبی هستی مادر؟ جبلی توی خونه، پیش مادرش آشپزونه است. جبلی چای می‌ریزه و مادرش سالاد درست میکنه دخترو پشت پنجرهی خونه جبلی هست. خانم ها بفرماید برین با سرنوشت خودتون بازی نکنین این چند دفعه؟ نمیدیم چرا متوجه نیستین؟ خانم داروی با من مشکل دارم اگه من قبول کنم ایشون قبول نمی کنم شما بیاینون قبول میکنه. آخه ما در شما خیلی کار بدی کردیم با احساسات مردم بازی کردیم خب تقصیر خودشه خانم داروی خیلی نامردی سهر رو اخراج کرد. باید میدید خب سرجان شما عقد کرده بودیم باید به مدیرتون میگفتید خواستم بگم ولی گفتم چه کاریه هنوز که عروسی نکرده بودیم خب بابا حالا این حرفا چه ششو میزنید نیم صد دیگه بعد با... جبلی ساعت رو که نگاه میکنه چای روی پاش میز نیم صد دیگه بابا در سالن رو میبندن یه سال زحمتتون هدر میره برید دیگه فدای سرتون آقای جولی ما تو آخرش وای میست اوه برای آخرین بار دارم بهتون میگم میرید یا نه؟ نه به جهنم به این جایین چه تنه؟ آخه به من چه رفتی داره؟ ببخشید ما داره من اینقدر بمونید اینجا زیر پتون علف سخت چه یه چهی من بیارید من دارم توی اتاقم سوال تر میکنم کسی موزهم هم نشته ببخشید ما بلو. جبلی از آشپزخونه خارج میشه دختره نگاه میکنه بچه ها بهید بچه خوبیه ولی خیلی دندور موقع یه دنده نخواهد بکنه؟ نمیکنه تا آخرش پس بریم به کارتون برسیم دختران نامید چ. هر پنج تا مستثر جلو ماشین جبلی ای. جبلی اومده و بچه ها خوشحال میشن. سری بریم هم تو هم برسی. اونا با مینی بوس میرن راننده جبلیه در خونه جبلی زنگ می زن. مادر جبلی از پنجره جواب چیه؟ مزل جبلی؟ بله بچه های شیمیه من اینجا نایمدن آیه منیو سفید ماشین گنده بازر مادم شما خانو دارابی هستی؟ بله بچه های شیمیه من اومدم ویش جون و ورش هم بردم سر امتحان؟ بale بله خیالتون راحت باشه وحید موزه خیلی ممنونم ببین دکتر شما مالش اومید سفید رو دیدی؟ هرتاش سالم بو جایش نخورده بود والله تا اونجایی که من میدونم یه ورش رفته بود آه! بیا بابا اینا شوفانم وزت می‌خرم آخه چرا خودا تو ییری بیری یه بر میری بس بعد برم راحت نشو کرد کردم خودت هم الان چی شوخی هوا جان داری ای یاسمان خانم شما اینه بله. بale آخه راجب من یه جورایی شما خیلی با مصاحبت کردم وای هلی چی گفتم؟ خیلی تعریف شما رو با من کرد شما چند سالتونه؟ میست و سال جزا من بریم دیگه خدا توی ماشین دکتر آقاسی دل تو دلش نیست و داره رو دکتر جرو بحث شماست من چی دارم خانوم؟ بفرمایید خانم, خانم جناب مغز متفکرین تو عملیات الانم که گوی راننده مینیبوس ایشونه خب اینو همه برمی‌گره به شی وبیت علی خودتون رو گردن من نندازید خواهش میکنم. اه حالا تقصیر من شایع بله, بله. ایشون بر این وسیله ندامتگاه مرکزی اداره نمیکردین الان دختران تو خیابون ویلون نبود پشت رول مینیبوس این آقا. آه. شما در اون حدی نیستین که در مورد اصول تربیتی و آموزش مدرسه من نظر بدین. خب دلم بخواد نظر <تصفح> میدم. اطلاعات تو مدرسه من دو سر هم در نمونه نظر اصلا نمونه نیست. شما صلاحیت این موردو آقای من واقعی بچه هم و من نظر نادم کی نظر بده؟ به هر حال من مدرسه ما همونجوری اداره می‌کنم که خودم تشریف بدم آقای وارده شما هم بهتره فکر طبیت دخترتون باشید که مینی مردم مردمو دوزیده استرد خانم و دشتر واقعا همچی بچه های نوباره ای دفعه آخر باشه راجبه بچه های من اینجوری حرف میزنیم اومینوس بله ما سوچی برست باقوزه به حفظ دادن باش قرمزه رو ببینید. به نظر من شما با این مسئله مربوط به حقوق زنان و مردان این حرفا به این ذهن بچه‌های ما رو مسموم میکنید. من نمی‌فهمم ما مرد چه هیزمطری به شما فروختی؟ اصلاً اینجوری نیست. هست. نیست. هست. گیرم که هست. شما اعتقاد ندارید که حقوق زنان در این جامعهیم پایمال شده؟ معلومه که شده. نه اینجوری که شما شروع قش میکنید معلومه دیگه برای اینکه شما جزو همون پاییمال کننده ها هستید خانم دارابی من دکتر زنانم من به زنان خدمت میکنم خیلی بیشتر از شما اینا همش حرف آقای دکتر اعتراف کنید که به زن ها نگاه ابزاری دارید اعتراف کنید دکتر لحظه این ماکس به زنش داره دارابی رو برمیگردونه و در سکوت به دکتر نگاه میکنه دکتر هم با لبخند نگاش میکنه و آقاسی که در فکر جبلی <تصفيق> ماشین دکتر از یکی دو تا خیابون دیگه میگذره و به محله اولمپیاد میرسه از راهبند رد میشه و بغل مینیبوس سفید پارک میکنه همه سری پیاده میشه جبلی در کنار دخترا با مسئول امتحان چونه میزنه آقای محترم هنوز که امتحان رو شروع نکردن که امکان نداره هر پشم نزنین عزیزم منطق داشته باش اینه الان وقت را برن... کم نمیشه بگین چشم <تصفيق> روشو نمیدن چرا راشون نمیدن کیروشو را نمیده خانوما دیره تون شد بیاین سر جلسه امتحان چرا شما نمیگین شاگرد خانم دارابی هستین آقا مگه نمیگی شما قانون قانونه چی شد پر؟ با؟ آقا همش فرمالیتاد میگن بیان خانوما بیا بیاین دارو کرده خیلی خب بری تو ببینم بعد از امتحان خدمت تک تکت تو میرسم البته با اجازه آقای والدین شما تام داری خانم خانم دارابی آقای جمدی رو برمیگردونین مدرسه دختر نه خیر ببخشید خانم ببخشید بابا پس ما امتحان نمیدیم بله, بله. بله. امتحان نمیدید نه خیر خیلی بی خود میکنید امتحان نمیدید پاشید به این جلسه مرشید پاشو خانم دیگه رو مای حساب نکنید به جان خودم همتون رو اخراج میکنم یک کاری میکنم دیپلمم بهتون ندن فروغش میریم شوهر میکنی اصلا هم باید ببین پریه یا بلن میشین مثل بچه آدم میریست سر اون جلسه امتحان یا میام گوشتو میگرم خودم میبرمت برم تو هم ورقه رو سفید میدم تو قلط میکنی پدر سوخته؟ همینی که هست اه اه اه شاپوری با پدره درست حابت کن ببینید بچه ها خوب گوش کنید خواهش میکنم به خاطر من زندگی خودتونو خراب نکنید. اگه احساس گناه می‌کنید، فکر می‌کنید به خاطر شما بوده که من بیکار شدم کارم را دست دادم اینطور نیست خیالتون راحت من یه جای دیگه قرار داد بستم آقای جمالی بله توفاق نزدیک شماست در بیرسن الوند بخیال راحت الوند امتحانتونو بدید بله الوند بله آقای رضایان به من لطف داشتن به جای دبیرش اینشون که سرباز فراریان منو بردن سر کار ایشون خیلی غلط کردن که شما رو بردن شما هم همینطور که قبول کردید حالا از من دبیر میدوسته مرتی که کوتوله کجاست بش نشون بدم من داره بیجون شما تو رو خدا بس, بس, بس کنین سکته میکنین تو این وضع میافتید رو دستمونا بسید اول قضیه بچا رو فیصله بدید گوره پدر بچا آقای جمال. شما هم همین الان برید قرار رو با اون مرتکبی دوست بسک میکنید، بر میگردید میاید پیش خودمون فهمیدی چی کفدم؟ باید، یه, یه لحظه باید، دست نزن، دست نزن واد. من باز یکم کم فکر کنم راجبیش. باشه قبول میکنم. بچه خوش ها خوشحال. جیبیلیا. دکترم خوشحالی خانم آقاسی که خیلی خوش باشی. هستن. آقای چه بلحسان باباتون نمیشه اینقدر به من امروز استراف آورده چون اینقدر فشار به خیر امواتتون رو بده. این مسئله‌ای بود تموم شده رفت خانم آقاسی. آقای جلدی ما خیلی خوشحالیم از که شما برمی‌گدی پیش ما. بله ولی خداش اینقدر روزات مدرسه جاتون خالی بود مرسی شما خیلی مهربونین. ما در خیلی خير. خیلی خیلی کشاورز یوسف ده خب دیگه صاف کرد میخوایم بریم یه کافی شاپ چیزی بخورین؟ و خب... خب اجازه ما میریم بله. جبلی و آقاسی از پله‌ها پایین میرن و دور میشه حالا دکتر و دارابی تنها شد همین دیگه وقتی من مرد راه نمیدادم به خاطر همین چیزا بود خامه درویشان نمیخویم بی خیال نه خیر. من هنوز منتظر نبرد انتقامی هستم. اما... تا <تصفح> قبل دست کم گرفته بودم از تو. این بار میخوام با تو جدی بازی کنم. دیدم اون دفعه چقدر جدی بازی نمیکردیم کم مونده بود سکته کنیم همینجا من. هه. با لبخند سر بر می گه. دکتر نگاهی به ساعتش می و دست به سینه نیستی منتظیر جوابی دارا بید خب دیگه چه خبر؟ بگم بهتون بگم چه خبر؟ نه بذارین من بهتون بگم کردن یک گرامی ما قصد داریم با پخش فیلم های کمدی خوب و قابل توجه کشورمون از طریق فیلم لحظات شاد و خوبی رو برای شما ایجاد کنیم امیدوارم با شنیدن فیلم ورود آقایان ممنوع این لحظات شاد ایجاد شده باشه در پایان تشکر میکنیم از صدا بردار همیشه همراه برنامه جناب آقای علی حاجین و و تهیه کننده توانا فرشاد آزرنیان منم بهرام سروری نجات هستم که سعی کردم در ایجاد این لحظه های شاد سحیم باشم با همکاران گران قدرن. تا رادیو فیلم دیگه خدا نگهدار و شاد ش مردم خودتان قرود آقایان من بوئیم با زنها هر جا که دلشون خست میرن قرود زنها آزادی اما مردا هر وقت رو شون بخواه میمیرن خسته هم خسته از دست این دنیا آه. از مدیر و نازم و این شاگردان این همه مدرسه بود دنیا اون وقت باید بیفتم اینجا این آسیه نمک زد کفر خانون من دو